هزار افسان برنامه از گروه جوان و فرهنگ که با نامت جهان آغا شد دفتر من هم به نامت باز شد به نام خدا آن خالق یکتا سلام و درود بر شما فرهنگ و ادب دوستان جوان افسانه ها از همان روزهای اولیه یک زندگی بشر آغاز میشه یعنی از دوران دگرگونی حیات که شامل دوره های گردآوری خوراک، دوره شکار گلهداری و کشاورسیه زبان افسانهها ها خسرتی دوگانه داره در همون حال که هزاران رمز و راز در دل پنهان داره اما ساده و صمیمی و روانه و ما افسانه این هفته ما یک افسانه ای ایرانی براتون تعریف می‌کنم به نام اژدها و زن ظالم برگرفته از کتاب افسانه‌های مردم بختیاری به کوشش کتایون لیموچی در یکی از افسانه های مردمان اسیل سرزمین بختیاری اومده که در روزگاران قدیم مردی با همسرش در روستایی دور افتاده زندگی میکرد. زن توی خونه سلطه بیشتری داشت و مدام سر هر چیزی به شوهرش نق می‌زد و از اون ایراد میگرفت. این رو هم بگم که زن زبون تند و کنایامیزی هم داشت. در یکی از روزها مرد با دوستانش سرگرم حرف و گفتگو بود و دیر به خونه برگشت. زن از اینکه همسرش دیر به خونه اومده، آمده عصبانی شد و شروع کرد به قُرُلُم کردن و آزار و اذیت مرد. مرد که از این رفتار زنش به شدت ناراحت و عصبانی شده بود، طاقتش تاب شد و رید زن و خونه و زندگی رو زد و اونجا رو ترک کرد و با خودش عهد کرد که سر به بیابون بذاره و دیگه حوث بازگشت به اون خونه نکنه که براش از جهنم هم اون خونه بدتر بود حلاسه مرد افسانه ما خسته و کوفته با افکار پریشون به راه افتاد حالا کجا میرفت؟ براش فرقی نمیکرد کجا میره فقط میخواست هرچه زودتر از اون خونه و زخم و زبونهای زنش دور بشه رفت و رفت و رفت تا به درخت تنومندی رسید که شاخ و برگ زیادی داشت مرد زیر سایه درخت راست کشید و از شدت خستگی به خواب عمیقی فرو رفت مرد تو خواب بود که سر های شنید بیدار شد و ادهی رو در اطراف خودش دید اونا نوکرها و ملازمان تاجری بودند که با اسبها و شطرهای زیاد در کنار راه استراحت میکردند. مرد تاجر به نوکران خودش دستور داد که از این مرد غریبه پذیرایی کنین و به اون غذا بدین مرد با خوشحالی گفت دست شما درد نکنه شما تاجر مهربون و باسخاوتی هستید. انشالله همیشه زندگیتون پر رزق و روزی باشه بعد غذاهای متنوع و خوشپختی رو که نوکرها جلوی روش گذاشته بودن خورد. بعد از اینکه حسابی سی شد مرد تاجر از اون پرسید من یه چهرت دردی میبینم دلم میخواد بدونم چه مشکلی داری دردت چیه؟ مرد آهی کشید و گفت: چرا می‌خواید درد منو بدونی؟ گفتن اون دردی رو دوام نمیکنه. کاری از دست شما ساخته نیست. تازه شنیدن درد من به چه کار شما میاد ها؟ تاجر گفت: ای قریبه رحمت به بزرگی کوه نیست که ها؟ میخوام به تو کمک کنم. تو دردت رو بگو، شاید یه راه حلی به نشون بدم. مرد مشکل خودش رو برای تاجر بازگو کرد و از ناسازگاری ها و بد ها و بد زبونی های زنش گفت. تاجر از شنیدن سرگذشت مرد متأثر شد و چند تا گوهر شب چراغ به اون داد و گفت بیا، بیا بگیر. اینا رو به زنت بده و بگو این گوهرهای شبچراغ رو از توی چاهی پیدا کردی تا زنت وسوسه بشه و به محل چاه بیاد. اون وقت اونو راضی کن برای برداشتن گنج بره داخل چاه. به محض اینکه وارد چاه شد رها کن تا به دقل چاه بیفته و بهش بگو مدتی اونجا بمون و در مورد رفتار بد و زخم زبونات فکر کن. هر وقت سر اقلومدی؟ میام تو رو بیرون میارم مرد گوهرهای چراغ رو از مرد تاجر گرفت و راه افتاد تا به خونه رسید زن به محض دیدن مرد چوب دستی رو که در کنج خونه بود به دست گرفت و به طرف مرد حمله ور شد و گفت باز که این طرفا پیدا شد برو برو همون جایی که بودی و بعد اونو به رکبار دشنام و زخم و زبون گرفت و خواست چوب دستی رو محکم توی سر مرد بکوبه که مرد با صدای بریده بریده و تن لرزون گفت صبر کن، صبر کن زن، من نزن میخوام یه مشت بده بدم، صبر کن، یه مشته قیمتی نزن و بعد مشتش رو باز کرد و گوهرهای شبچرها رو بزن نشون داد و گفت من گنج پیدا کردم هفت خومره پر از گوهرها گی شبکره این چند تا گوهر رو از اونجا برداشتم زن با دو دست بر سر شوهرش کوبید و گفت خاک بر اون سرت بکنن مرد از هفت خمره فقط همین چند تا دونه رو برداشتی؟ واقعا که عبلهی مرد گفت آخه آخه چجوری میتونستم اون هفت خمره رو بیارم اومدم که با هم بریم و اونا رو از شاه بیرون بیاریم خب نظری چیه زن می بریم اونجا؟ زن با خوشحالی گفت البته که میام یلا یلا زود باش تا کسی از اون گنج با خبر نشده بریم اونجا و هفت خمره رو برداریم و بیایم. و بعد با یه علاق راهی بیابون شده طول راه زن مرد رو تهدید میکرد که وای به حالت اگه کسی خمرها با خبر شده باشه وای به حالت روزگارتو سیاه میکنم مرد گفت زن مطمئن باش کسی از گنج ما خبردار نشده ما تو پولدار میشیم پولدار با گفتن این حرف زن در رؤیا خودش رو در قصر مجلل و با شکوهی دید که خدمتکاران و نگهبانان زیادی داشت. از اینکه که به زن روی زمین میشه احساس شیرین و لذت بخشی داشت خودش رو در فاخرترین لباس ها به گرونترین جواهرات تصور می مرد که سر اولا رو گرفته بود اون رو نگه داشت و به زن گفت آه، رسیدیم چاه همینجاست چاه چا هم خوشبختی ما زن با خوشحالی از اولاغ پیاده شد مرد با دست با گفت، ها گفت حالا حالا رو چجوری بیار... بیاریم بالا ها؟ چجوری حملشون کنیم هفتا هفتا خمره گوهر شبچراغ رو بالا کشیدن کار سختی من که اصلا توانشو ندارم مرد سعی کرد حمل گنج و بیرون آوردن اونا رو مشکل جل بده. زن گفت بی ارزه زد تناب رو به کمرم من ببند تا خودم گنج رو بالا بیارم. واقعا که بی ای. تو هیچ وقت ارزی انجام دادن کاری رو نداشتی این که چیز ای نیست زن اینو گفت و تناب رو برداشت و داد به شوهرش رو گفت اینو او کم به کمرم ببند خودم میرم و هفت خمره رو میارم بالا ای خدا خدای خدا با این مرد بی عرضه و تنبل چیکار کنم خلاصه مرد تناب رو محکم به کمر زنش بست و اونو به داخل چاه فرستاد وقتی زن به قعر چاه رسید مرد تناب رو رها کرد و با عجله به طرف خونه براه افتاد وقتی به خونه رسید نفسی به آسودگی کشید و با خودش گفت آخه حد شدم اوه، واقعا که زنه بعد زبون و غرغر داشتن آدم و دیو نمیکنه حالا میتونم چقدر دلم میخواد بیرون از خونه بمونم و کسی سرم غور نزنه چند هفته گذشت مرد کم کم دلش برای ز سوخت با خودش گفت نه کار درستی نکردم خب زنم بد زبون بود گرگرو بود ولی خب اون زنم بود آره زنم بود دیگه و بعد اضافه کرد بهتر برم سر چاو و اگه زنم زنده بود اونو نجات بدم خدا رو خوش نمیاد مرد با این فکر روونه بیابون شد رفت و رفت و رفت تا به بیابونو چاه مرد نظر رسید مرد به چاه که رسید تنابی رو به داخل چاه انداخت و بعد از چند لحظه نو بالا کشید تناب به سختی بالا می اومد. مرد با زور زیاد تناب رو بالا کشید و با خودش گفت. نه، nah, انگار، آب و هوای چاختش ساخته، کلی وز زیاد کرده. مرد منتظر بود که زنش رو ببینه، اما، اما به جای زنش اجده رو در مقابل خودش دید. مرد با دیدن اجده از ترس و وحشت بیهوش شد، و نقش زمین گشت. اجدها دور مرد چرخید. سعی کرد اونو به حوش بیاره. مرد به حوش اومد. اما با دیدن اجدها دوباره بیهوش شد. زحمت اجدها زیاد شد. چون دوباره دور مرد چرخید. تا اون رو برای بار دوم به حوش بیاره. اجدها گفت. مم، از من نترس. از من نترس و دیگه بیهوش نشو. تو منو نجات دادی. میخوام کمکت رو جبران کنم تو به من خیلی محبت کردی مرد که این حرف رو شنید با تعجب پرسید من من چی کمکی به تو کردم که خودم خبر ندارم ها اجدها گفت این چاه سال هاست که خونه منه نمیدونم چه خدا نشناسی زنید و داخل چاه انداخت این زن ناسازگار رو زبون خواب و آرامش رو از من گرفت خونم رو جهنم کرد منو از گت و آزار میکرد از دست اون به ستو اومدم تو فرشته ی نجات من شدی نمیدونی نمیدونی که زن زبون قرقروی بود تو منو از دست اون نجات دادی مرد وقتی این حرفها رو از زبون اجده ها شنید دیگه جرات نکردون بگه که ماجرا چیه و اون زن ناسازگار و بدزبن زن خودشه خلاصه اجدها اصرار داشت که در مقابل نجاتش از دست زن ناسازگار کاری برای مرد انجام بده اون گفت کار <تصفيق> من خفه کردن شاهزاده خانم ها هست من دور گردن اونها حلقه میزنم و اونها رو خفه میکنم حالا هم باید به سراغ شاهزاده خانم اینتیار برم ولی یه فرصت خوب برای تو فراهم میکنم اینجوری کمک تو جبران میکنم مرد پرسید چه فرصتی اجدها گفت من دور گردن شاهزاده خانم حلقه می زنم. اون وقت پادشاه برای نجات دخترش تکاپو میفته و به جارچیا میگه که در سطح شهر اعلام کنن هر کس بتونه با رشادت و شجاعت شاهزاده خانم رو از دست اجدها نجات بده پادشاه اون رو از مال دنیا بینیاز میکنه و دخترش رو به عقد اون در میاره. مرد پرسید خب خب من باید چیکار کنم؟ اجدها گفت تو تو باید به قصر پادشاه بیای و اعلام کنی که میتونی شاهزاد خانم رو از دست من نجات بدی منم به محض ورود تو به قصر خودم رو کنار کشم و پا به فرار میذارم اینجوری تو هم داماد پادشاه میشی و هم از مال دنیا بینیاز مرد با دقت و حرف اجدها گوش میداد. اجدها ادامه داد و گفت فقط فقط یادت باشه که تو فقط یه بار منو نجات دادی منم فقط یه بار به تو این فرصت طلایی رو میدم و دیگه با تو کاری ندارم تو هم نباید با من کاری داشته باشی فهمیدی؟ اجده اینو گفت و به طرف قصر پادشاه گرفت اجده ها دور از چشم نگهبانها وارد قصر پادشاه شد و دور گردن شاهزاده خانم که در خواب بود حلقه زد خبر به پادشاه رسید که جون شاهزاده خانم در خطره و پادشاه به جارچی ها دستور داد که در تمام شهر جار بزنند که دختر پادشاه در خطر مرگه اون اسیری اجده مهیب شده و به زودی اون رو به هلاکت میرسونه هر جوون مردی که بتونه جون شاهزاده خانم رو نجات بده همسر آینده شاهزاده خانم و داماد پادشاه میشه و پادشاه اون رو از مار دنیا بی‌نیازمیکنه. بله. از یزجانهای شجاع به قصر اومدن اما با دیدن اجدهای هولناک و شنیدن قرش مهیبش پا به فرار گذاشتن. در این موقع مرد افسانه ای ما به حضور پادشاه رسید و اعلام کرد که میتونه شاهزاده خانم رو از دست اژدها نجات بده بعد آروم وارد اتاق شاهزاده خانم شد ظاهرا وردی خوند اژدها هم همونطوری که قبلا به مرد گفته بود راهش رو گرفت و از سرس بیرون رفت در این موقع جارچی ها در تمام شهر جار زدند به خواست خدا خطر توسط جوونی شجاع رفت شد و به امر پادشاه شاهزاده خانوم به عقد این جوون در میا. خلاصه فردای اون روز جشن عروسی مرد افسانه ما و شاهزاده خانوم برپا شد. هفت شبان روز شادی و پایکوبی در تمام شهر برپا شد. مدتی گذشت پادشاه کشور همسایه اونا رو به قصر خودش دعوت کرد و بعد از تشریفات و پذیرایی پادشاه همسایه رو به مرد کرد و گفت ای قهرمان نامی، همون اجده که بر برگردن همسرتون حلق زده بود، الان دختر منو به مخاطر انداخته و به زودی تنها دخترم قربانی میشه از تو تمنا دارم جون دخترم رو نجات بدی، من، من در دبال رشادت تو نصف کشورم رو به تو میبخشم مرد افسانی ما که میدونست توان انجام دادن این کار رو نداره و اجدها دیگه به اون فرصت این کار رو نمیده گفت متاسفم بر من توان این کار رو ندارم پادشاه همسایه با عصبانیت گفت توان این کار رو نداری؟ پس چجوری جون همسرت رو نجات دادی؟ ها؟ اگه اگه جون دختر منو نجات ندی دستور میدم جلاد گردنت رو بزنه مرد به ناچار قبول کرد چون فکر میکرد اگه این کار رو نکنه جلاد گردنش رو میزنه پس بهتر دید که بپذیره خلاصه مرد افسانی ما وارد اتاق شاهزاده خانم شد اجلاها دور گردن اون حلقه زده بود و شاهزاده خانم در آستانه مرگ تقلا میکرد اجده ها با دیدم مگه خور ندادی به سراغ من نیای میخوایی تو را هم به حلاکت برسنم؟ مرد با دست با گفت نه نه نه, نه. من, من. اجده ها گفت تو فقط یک بار جون منو نجات دادی منم یک بار به تو فرصت و دادم پس دیگه به هم بده کار نیستیم حالا تا برای سرک نیاوردم زودت زودتر از اینجا برو و گرد خونت گردن خودت مرد دیگه نمیدونست چی بگه. تازه جون خودش هم در خطر بود یک لحظه فکری به خاطرش رسید و گفت نه دوست عزیز اشتباه نکن من از تو چیزی نمیخوام فقط فقط اومدم تو رو دوباره نجات بدم آخه آخه با نگرانی پرسید آخه چی؟ چی شده؟ مرد گفت اومدم بهت بگم همون زن ناسازگار و بدزبون که توی چاه بود در به در داره دنبال تو میگرده و داره مید اینجا اجده با شنیدن این حرف شاهزاده خانم رو رها کرد و پا به فرار گذاشت و به مرد گفت من رفتم هر وقت این زن سراغ منو گرفت فورا خودت رو به من برسون تا شر زخم زبونهای اون به یه جای دیگه فرار کنم من طاقت و تحمل یه لحظه اون رو هم ندارم و بعد از اون جا دور شد و رفت و رفت و رفت بعد به این ترتیب شاهزاده خانوم نجات پیدا کرد پادشاه کشور همساییم طبق قولی که داده بود نصف کشورش رو به مرد افثانه ما بخشید و مرد در کنار همسرش یعنی شاهزاده خانم زندگی خوب و خوشی رو گذروند افسانه ایرانی اجداها و زن ظالم رو براتون نقل کردم برگرفته از کتاب افسانه های مردم بختیاری به کوشش کتایون لیموچی در هر افثانه حادثه و ماجرهایی مخصوص نقل میشه که بیانگر غمها شادیها و مبارزه همیشگی انسان است و این راز مندگاری و دیر افثانه افسانه است. هزار افسان کار مشترکی است از نویسنده و سردبیر زینت صالح ویراستار الهام اشجع اجرا مهران دوستی صدابردار اکبر میکاین. تیه کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانی دیگر بدرو